یا رب یاربین نوگل خندان که پردی به منش می سپارم به تو از چشم حسود چمنش گرچه از کوی وفا گشت به صد مرحل دور دور با دور فلک از جان و تنش گر به سرمنزل سلمان رسی ای باد سبا چشم دارم که سلامی برس آنیز منش به ادب گشایی کن از آن زلف سیاه جای دلخوی عزیز است به هم برمزنش گو دلم حقه وفا با خط و خالت دارد محترم دار در آن ترے انبر شکنش در مقامی که به یاد لب او می نوشند سفلان مست که باشد خبر از خیشتنش در مقامی که به یاد لب او می نوشند سفلان مست که باشد خبر از خیشتنش ارز و مال از در می خانه نشاید اندوخت هر که این آب خورد رخت به دریا فکنش هر که تر صد ملال اندوه عشقش نه حلال سر ما و قدمش یا لب ما و دهنش شعر حافظ همه بیت الغزل معرفت است آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش